بسم الله الرحمن الرحيم فصلون اقرب العصبات ما در درس قابل خان نمك انسان از دراهر سميبر یا زو الفروز یا أصباقی زو الفروزون ياسك سهمش مشخصي توس دوختر سهمش تنها كباشه یك دو فومه دو تا دوختر داشته باشه ماهیت كدو سفومه و ببالاتر یعنی دو دوختر و بیشتر داشت سهمشون دو داش سفومه خواهر یک نفر باشه سهمش یک دفمه. دو تا دوتا و بیشتر باشن دو سهم مادر جز زوال فروز سهمش یا یک سیفوم یا یک شیشم که جلوتر اینا رو حالا چه خواهیم خود گروهی هستن ارس میبرند ولی سهمی براشون تعیین نشده مثل پسر زمیت فوت کرد پسر داشت این عصبه هست این زوال فروز نیست اینجا چه کار میکنیم اینجا اگه میبینیم تو مسئله زوال فروزی بود سهمشو میدیم هر چه باقی موند عصبه میبره فرزن شخصی فوت کرده مادر داره و پسر یک پسر مادر یک شیشم خودشو برمی داره باقی مانده مال پسر میبره اینو میگن عصبه عصبه اونی است که بعد از ارث میبره اون که باقی بمونه از مال بعد از اینکه صاحب فرض صاحب سهم سهم مشخصش رو برد ولی این عصبات اولویت بندی دارن نزدیک و دوری دارن بعضی نزدیکترن بعضی دورترن ها؟ مثلا به عنوان نمونه هم پسر عصبه هست هم برادر هم امو خب ولی زمانی که تو مسئله ما پسر رو داشته باشیم دیگه برادر و امو ارسی نمیبرند پس این بحث خیلی مهمه فصل اقرب العصباتی نزدیکترین عصبات و العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب، ثم ابوه نزدیکترین عصبات پسر است بعد از پسر، پسر پسر پسر سپس پدر سپس پدر پدر ثم الاخو للابی والام سپس برادر پدر و مادری برادر شقیقه برادری که با میت هم پدر و هم مادرش مشترک باشند ثم الاخ للاب سپس برادری که فقط از طریق پدر برادر است ثم ابن الاخی للابی و الامی سپس پسر برادر پدر و مادری سپس پسر برادر شقیق ثم ابن الخ للاب سپس پسر برادر پدری ثم العم على هزه ترتیب سپس امو به ترتیب یعنی سپس امو پدر و مادری و سپس اموی پدری على هزه ترتیب یعنی اموی شقیق داریم و اموی پدری مثلا یک اموی هست با ميت اموی ولی پدرش با پدرش برادران مادرشون هم یکیه پدرشون هم یکی است مادر هم ما اموی داریم که برادر شقیق پدر هست اموی داریم که برادر پدری پدر هست اله ها ترتیب منظورش اینه ثم ابنه سپس پسر امو فان عدمت العصباتو اگر عصبه ای نبود شخصی مرده بود و عصبه نبود فالمال المعتق اون موقع مولای معتق آخرین عصبه هست مولای معتق یعنی آزاد کننده مثلا شخصی فردان کسی نداشت خب مولای موتق از راه احسابگی ارس میبره فصل، فصل بعدی الفروز المقدره المقدر سهمهای مشخص ببینید بعد از اینکه توضیح داد احسابه رو سهمهای مشخص رو توضیح میده چرا؟ چون اونای که دارای سهم مشخص هستند، ابتدا سهمشون از مال از میراست جدا میشه بعدا ز عصبه ها هستند که با قیمانده رو میبرند والفروز مقدم تو, تو في کتاب الله تعالی ستة فرزهایی فرض که یا سهم های مشخصی که در کتاب خداوند ذکر شده 6 تا می باشن نصف یک دووب والربع یک چارم و والربع یک چارم و یک هشتم و ثلثانی دو سفم و یک سوم، و سو سو، یک شیشم اینا فرضها هستند اینا سهمهایی هستند که در قرآن ذکر شدند یعنی افرادی که از راه سهم ارز میبرند یا یک دوم یا یک چارم یا یک هشتم یا دو سوم، یا یک سوم، یا یک, یک شیشم البته تفاسیرات دیگه ای هست ولی چه که در سطح این کتاب است اینا اساسی ترینها هستند. خب حالا که خوندیم افراد یا یک توهم میبرند یا یک چهارم یا یک هشتم یا دو سوم یا یک سوم یا یک ششم از این جای کار اونای را میخونیم که یک دووم مالو میبرم بعدش اونایی که یک چهارم بعدش اونایی که یک هشتم بعدش اونایی که دو سوم بعدش اونایی که یک سوم و بعدش اونایی که یک ششم ابتدای کار فر نصف و فرض و خمستن. یک دوم سهم پنج گروهه. یک البنت دختر، دو و بنت ابر، سهم دختر پسر، سه وال من ال دختر وال من ال ابی وال ام سه خواهر پدر و مادری. یعنی خواهر که با خواهر خاورس خواهر شقیقشه هم پدر و هم مادرشون یکیه. جحر والاخت من الاب خاهر پدری پنج و زوج اذا لم يكن معه ولد شوهر زمانی که زنش فرزند نداشته باشه جیگر گفته بود و زوج اذا لم يكن معها ولد بهتر بود بله پس نصف سهمی اینا بود فرزان شخصی فوت کرده یک دختر داره و پدر بگیم دختر اینجا یک دومه مالو میبره یا شخصی فوت کرده دختر پسر داره با پدر دختر پسر یک دومه مالو میبره یا شخصی فوت کرده شوهر داره و خواهر داره یا نه شخصی فوت کرده یک خواهر داره بزافه یک امو و خواهرش اینجه یک دو معلوم مالو میبره به این ترتیب پس نصف سهمیه این پنج گروهی بود که نام بردم و فرد و اثنینی یک چهارم سهم دو گروه هست یک از مع الولدی و مع او ولد الام یک سهم شوهر است زمانی که میت فرزند داشته باشد یا فرزند فرزند بله پس شوهر یک چارم میبره زمانی که اون زن فرزند یا فرزند فرزند داشته باشه دیگه یک چارم سهم چه است؟ او و فرد و زوجتی و زوجت معاعدم الولد و ولد الابن سهمیه زن هست از شوهرش زن از شوهرش یک زن یا زن‌های بیشتر فرقی نمی‌کنه یک چهارم می‌بره زمانی که شوهر فرزند یا فرزند فرزند نداشته باشه شخص فوت کرده یک پسر داره و شوهر اینجا پسر شوهر یک دو... یک چهارم مالو می‌بره پسر باقی رو می‌بره این شخص فوت کرده اصلا فرزند نداره یک زن داره و پدر زنش یک چهارم رو میبره باقی مانده رو پدر و, و فرد والزوجات مع الولد او ولد الابنی. یک هشتم سهمیه زن هست و زنان حالا تو یک زن داشته باشه چه دو تا چه سه تا چه چهار تا سهمشون مون یک هشتمه چه زمان سهمیه زن یا زنان یک هشتم است مع الولد او ولد الابن زمانی که شوهر فرزند یا فرزند فرزند داشته باشه فرزند شخصی فوت کرده زن دارد و یک پسر اینجا زنش یک هشتم مالو میبره یا زنهاش فرقی نمیکنه و پسرش باقی مانده مالو میبره و سلوثانی فردو اربعتین دو سوم سهم چار گروه یک البنتین دو تا دختر شخصی فوت کرده دو تا دختر داره رو پدر دو تا دختر میبرند دو سوم باقی رو پدر و بنت الابن دو دختر پسر هم شخصی فوت کرده دو دختر پسر داره و یک پدر دو دختر پسر دو میبرن پدر باقی مانده رو والاختان من الاب و الام گروه سیفو میک همشون دو 3 است دو خواهر پدر و مادر یعنی اگر میت مرد دو خواهر پدر و مادری داشت اینجا دو تا دو دو, و... دو سوم میبرند. شخص فوت کرده دو تا پدر و مادری داره به اضافه امو دو تا خواهر دو سومو میبرند امو باقی مانده رو ولوختین من الاب چهارمین گروه هست که سهمش دو سوم است دو تا خواهر پدری. شخص فوت کرده دو تا خواهر پدری داره یا بیشتر فرقی نمیکنه. و یک امو دو تا دختر یا بیشترها فرقی نمیکنه. دو میبرند می و باقی رو اموه و ثلث فرض اثنتاین یک سوم سهم <coughs> الحمدلله یک سوم فرض دو گروه است سهم دو گروه است یک الوم اذا لم سهمیه مادر زمانی که محجوب نشه منظور از محجوب نشه ما دو تا به حرمان داریم حجب نقصان یعنی سهمیش از یک سوم به یک شیشم نقص نکنه وگرنه مادر به طور کلی محروم نمیشه مادر خوندیم قبلا مادر از اون گروهی بود که کاملا ساقط نمیشد یعنی سهمیش از یک سوم میاد به یک شیشم پس مادر یک سوم میبره زمانی که محجوب نشه. و در دو حالت مادر سهمش از یک سوم میاد به روی یک شیشه زمانی که مییت فرزند داشته باشه دو زمانی که برادر و خواهر بیشتر از یک تا داشته باشه در این حالت هم مادر سهمش میره روی یک شیشه. پس مادر یک سوم میبره زمانی که محجب نشه. یعنی زمانی که مییت فرزند داشته باشه. دو زمانی که برادر و خواهر نداشته باشه فرزن میت فوت کرده، مادر داره و پدر. خب مادر میبره یک سوم، باقی رو میبره پدر. بله. اینجا پس سهم مادر شد یک سوم. دو و هولل اثنانی من الاخوتی اخوة و من ولد الام ام. دوو گروهی که سهمش یک سوم است. زمانی که دو تا باشند یا بیشتر خواهران و برادران مادری میت برادران و خواهران م... خواهری داشته باش مادری داشته باشه که از دو نفر بیشتر باشند فرزن شخص فوت کرده دو تا برادر مادری داره دو تا برادر مادری داره و یک عمو داره خب برادر و مادری یک صفحه مالو میبرند باقی مانده رو امو میبره تا اینجا